من, من از تنبیه و بدیهای پیری بتوانم بره. بار ایلاها. من از عذابیت زخو عذاب خبر بتوانم بره. سیرت پیامبر اسلام صلی الله عليه و پیامبر صلی الله علیه و در پی کسب و کار پیامبر صلی علیه و سلم در سنین جوانی کذب و کار مشخص نداشت اما در این ایام بیشتر به چوپانی و گوزفند چرا پرداخت تا زحمات کاکایش ابو طالب را جبران نماید اما بعد از مدتی که روزگار را به چوپانی سفری نمود دست از این کار کشید و به تجارت پرداخت البته هدف پیامبر صلی الله علیه وسلم از چوپانی تهیه خرج و مخارج زندگی بود و دیگر این که بهتر می توانست آیات و نشانه الله جل جلاله را از جمله عظمت آسمان، زمین، خورشید ستارگان ماه و غیره را بیبیند پیامبر صلی الله علیه وسلم در سن بیست سالگی به قصد تجارت با سرمایه خدیجه روانه شام شد خاطر اینکه خدیجه زن ثروتمند و پولدار بود افراد را عجیر می نمود. تا با سرمایه او به تجارت بپردازند وقتی که راستگویی و صداقت پیامبر صلی الله علیه وسلم به گوش خدیجه رسید فرد را نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرستاد و به پیامبر پیشنهاد داد که با غلام او میسره برای تجارت به شام برود به خاطر اینکه شغل مردم قریش تجارت بود پیامبر این پیشنهاد را پذیرفت و همراه میسره غلام خدیجه به شام رفتند خدیجه نیز پیشنهاد کرده بود مبلغ بیشتری را از آنچی به دیگر بازرگانان میداد و پیامبر صلی الله علیه و سلم بدهد بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه غلام خدیجه از سفر تجارت شام بازگشتند آثار برکت و امانت داری در اموال خدیجه نمایان بود بگونه که قبل از آن چونین سود عاید خدیجه نشده بود بله صداقت و درستی و امانتداری پیامبر صلی الله علیه وسلم خدیجه را مجذوب نموده بود بخصوص هنگام که غلام خدیجه میسر کرامات و بزرگواری هایی را که از پیامبر صلی الله علیه وسلم در طول این سفر دیده بود برای خدیجه تعریف نمود خدیجه عاشق و دلباخته پیامبر صلی الله علیه و سلم گردید. خدیجه به خاطر اینکه که نصب شریف داشت و زن پاکدامن و نجیب بود خواستگاران زیاد داشت. بویژه سران قریش از او خواستگاری می نمودند. اما خدیجه به همه آنها جواب رد می داد. چون آن خصوصیاتی که خدیجه دوز داشت در وجود همسرش باشد دارا نبودند. اما اینکه خدیجه پس از سالها گمشده خود را یعنی پیامبر صلی الله علیه و را پیدا نمود، خدیجه پیشنهاد ازدواج خویش با پیامبر را با زن نام نفیسه مطرح کرد. نفیسه پیشنهاد خدیجه را با پیامبر صلی الله علیه و در میان گذاشت. پیامبر صلی الله علیه و نیز پیشنهاد نفیسه را پذیرفت و این امر را با کاکای خود در میان گذاشت. آنان نزد کاکای خدیجه رفتند و از خدیجه برای پیامبر خواستگاری نمودند. با این ترتیب ازدواج پیامبر صلی الله علیه و با خدیجه صورت گرفت. تمام فرزندان پیامبر صلی الله علیه و غیر از ابراهیم از خدیجه می باشد. فرزندان خدیجه عبارتند از قاسم، زینب، رقیه ام کلسون عبدالله و فاطمه زمانی که صلی الله علیه وسلم سی و پنج سال عمر داشت قریش تصمیم گرفتند تا خانه کعبه را باسازی نمایند قضیه باسازی خانه کعبه از این قرار بود که بر اثر سیلی که در مکه اتفاق افتاده بود نزدیک بود تا منجر به ویرانی و نابودی خانه کعبه گردد قریش که به خانه کعبه احترام خاص قایل بودند، تصمیم گرفتند بنای آن را باسازی نمایند ابتدا آنان می ترسیدند که مبادا الله جل جلالهو به خاطر ویران نمودن خانه کعبه آسیب به آنان برساند و از طرف دیگر اگر خانه کعبه باسازی نمی شد بنای آن کاملا فرو می ریخت سرانجام ولید بن مغیره مخزومی کار را شروع نمود و دو رکن اصلی کعبه را ویران کرد و گفت بارلاها ما جز کار خیر هدف نداریم بعد از آن ساختن هر قسمت از کعبه را به یک طایفه سپردند کار سخت و باسازی کعبه تمام شده بود و تنها نسب حجر اسود باقی مانده بود از آنجایی که افتخار نصب حجر اسود نصیب هر ای که می امتیاز خاص نسبت به قبایل دیگر پیدا می نمود قبایل مختلف با هم درگیر شدند و این درگیری چهار یا پنج روز طول کشید و نزدیک بود که بین آنها جنگ سخت با ویرانگر اتفاق افتد بالاخره ابو امیه بن مغیره مغزومی به آنها پیشنهاد کرد که نخستین کسی که وارد خانه کعبه گردد در ارتباط با نظم حجر الاسود هرچی گوید دیگران قبول کنند همه قبایل این پیشنهاد را پذیرفتند و در انتظار این بودند که چه کسی وارد خواهد شد. الله جل جلاله این گونه اراده کرده بود که این افتخار نصیب پیامبر صلی الله علیه و سلم گردد. وقت پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک خانه کعبه شد همه نگاه ها متوجی او بود و از این که فرد امین و درستکار وارد شده است بسیار خوشحال بودند و در انتظار بودند که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه داوری خواهد کرد پیامبر صلی الله علیه و salam وقتی از ماجرا اطلاع پیدا کرد چادر خود را هموار نمود و آنگاه دستور داد که هر یک از سران قبایل ای از آن چادر را بگیرند و بالا بیاورند هنگامی که نوبت به نصب حجر رسالت که رسید با داستان مبارک خود سنگ را در جای مخصوص آن قرار داد و به این ترتیب با درایت و زیرکی خیش به جنگ و جدال میان آنان یعنی قریش خاتم داد بسوی, بسوی نور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 از تاریکی ها به سوی نور خارج سازد <متصفح> <متصفح> این دولت الاسلام نورت دن جادت سماك بوافر البرکات لما اقمت الدين فاین برنامه را شنبه ها از رادیو صبا خلافت فراموش من نکنید لحظات خبری سرای خلافه گزارش های جانبه از فعالیت‌ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سری خلافه شما را از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر می سازد. و از تبلغات دروغین رسانه‌های غربی پرده بر لحظات خبری صدای خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شنوندگان عزیزی رادیو صدای خلافت به بخش خبری ما خوش آمدید به امید این که روزهای ماه مبارک رمزان را به خوبی سیپری نمائید امروز جمعه پنجم ماه مبارک رمضان سال 1437 هجری قمری توجه شما را جلب می‌دارم به آخرین تحولات و پشرفی های دولت اسلامی و این هم سرخطی چند خبر دفتر رادیو انکاس و تلویزیون افغان کیبل در جلال مورد حمله قرار گرفت سلید تشدید دوباره درگیری ها در نقاط مختلفی ویلایات صلاح الدین صلیل حلاکت یک فرماندی سپاه پاسداران ایران در سوریه سلیلو سواری. سلیلو سواری. سلیلو سواری. و صوری درگیری ها در شهر منبیجی ویلایات حلب جریان دارد سلیلو سواری. سلیلو سواری. نشیدن اباد و درب القتال طریق الحیا بین اقتحام یابید الطغاء و سیم صدای سلیل الصوارب. و خبرها. مجاهدین شهری دولة اسلامی دفتر رادیو انکاس و تلویزیون افغان کیبل را در جریابات آماده حمله قرار دادند. در این باره گزارشی همکار ما ابو مسلم را مشنویم مجاهدین دولت اسلامی بالای دفتر رادیو اینکاس و تلویزیون افغان کیبل با استفاده از بمهای دستی حمله نمودند این دو شبکه غربی 24 ساعت به دعوت دیموکراسی و نشر فلمهای مبتزل و فحشا مشغول می باشند جهان کفر رسانه را من حیث طاقت چهارم شناختند اما در این اواخر همین رسانه های غربی و مبتزل با تمام قوت شانچنان به نشر و پخش افکار، مذاهب، فرهنگ و منافی غرب پرداختند که پیروان سیکولاریزم این رسانه ها را از طاقت چهارم به طاقت اول درآوردند. این در حال است که امریکا و متحدان مرتد وی با وجود استعمال انوای گناگون اسلحه نتوانستند بالای پیروان حق غالب آیند اما با استفاده از همین رسانه توانستهاند به حدی به مقاصد شومخیش برسند همین رسانه ها اند که افکار منحرف غربی ها فرهنگ و عقیده آنان را با بسیار زیرکی و هوشیاری در زیر چتر اسلام تحریف شده در ذهن جوانان ما تزریق می نمایند که فهم و درک آن تفکر عمیق کار دارد همین رسانه ها اند که اسلام امریکایی را من حیث اسلام حقیقی به جامعه معرفی می نمایند و فکر می کنند کسی نیست که طرحها و پلان های شوم آنها را بداند و به توقف آن اقدام نماید و این رسانه ها ادعا می کنند که بشر دوستند و استقلالیت در اساسات جورنالزم را مشناسند ولی در حقیقت همینها ها نقشه و پلان های شده کفار را عملی نموده و به منافع آنها کار می کنند بشر دوستی اینها به حدی است که از مظالم امریکا، روسیه و کشورهای دیگر کفری که در اکثر نقاط جهان جریان دارد چشم پوشی میکنند در حالی که هزاران طفل، زنان و مردان مستضعف از سوی همین کشورها کشته شده خانه‌ها و منازلشان ویران ایران میگردد اما نزد همین رسانه ها بشر به حساب نمی آیند اما زمانی که مجاهدین دولت اسلامی به خاطر دفاع از خودشان به کفار صدمه برسانند، همان وقت رسانه ها دم از نقص حقوق بشر می زنند و به طرفی ایشان نیز به همین چیز استوار است. به عملکرد مثبت دولت اسلامی جنبه منفی می دهند و شب روز به تبلیغات دروغین علیه مجاهدین دست می زنند. از جمله همین رسانه هایی که هم رادیو انعکاس است که هیچ گونه اساسات ژورنالیزم را نشناخته و به دشمنی خلافت اسلامی عزم راسخ را پیش رو گرفته است و به هر چیز با عینک امریکا نگرد و همین در قبال این رادیو کانال تلویزیونی افغان کابل است که همیشه به نشر و پخش افلام زد اسلامی و اخلاقی دست میزند این دو چینل به شمول رسانه های دیگر داخلی پرده های را از صورت خش برداشتند ادارات مربوط دولت اسلامی هر نوع عملکرد و رفتار این رسانه ها را زیر نظر داشته و تمام برنامه های آنها را تعقیب می نماید. دولت اسلامی بارها به این رسانه ها پیام داده است که به اصلاح اقدام نمایند. اما این رسانه ها با پول و دلار امریکا چنان گرم آمدند که فرصت برای بالا کردن سر خود هم نیافتند. این بار دوم است که مجاهدین شهری دولت اسلامی بالای دفاتر رادیو انعکاس و افغان کیبل حملات را انجام دادند در اثر این حمله تعداد وسایل این رسانه ها تخریب و دو کارمند فاحش نیز زخم برداشتند رسانه های مذکور به طور خاص و رسانه های دیگر داخلی به طور عام این عملکرد دولت اسلامی را زنگ خطر به خود بپندارند اگر در آینده هم از دشمنی با خلافت اسلامی دست بر ندارند چنین حملات ادامه خواهد یافت نگفته نماند که شیر مردان دولت اسلامی نخوز دشمن خود را آگاه ساخته سپس اقدام می نمایند. و به خوبی بدانید که محل کار، اقامت و مسیر حرکت هر یک خبرنگارانتان به نام ژورنالیست تحت تعقیب شیران دولت اسلامی قرار دارد. گزارش از زیراخ می رساند که درگیری ها در ولایت سلاح الدین بار دیگر در ماه مبارک رمضان شدت گرفته است. در تازه ترین موارد فرماندی نیروهای رافیزی به نام علی ترادل جبوری در خلال درگیریها در شمال بیجی جی به رسیده است خبر همچنان میفضاید که در شهرهای تکریت بیجی و سامر میان نیروهای دولت اسلامی و رافیز درگیری شدید جریان دارد و به الله اللہ تعالی دولت اسلامی بار دیگر بر این شهر, بر این شهر تحاکم پیدا خواهد کرد در همین حال در شماره اخیر هفتنامه نبه آمده است که دولت اسلامی بر مناطق هنشا و اشوائش که از خطوط دفاعی پالایشگاه بیجی جی به ایساب میاید تسلط یافتند. خبرها میگوید که فرماندهی کتیبه اوم المعارک بنام امر حسان توسط مجاهدین دولت اسلامی در ولایت ترابلوس به حلاکت رسید. در همین حال از رسیا می‌رساند که یکی از فرماندهگان سپای پاسداران ایران به اسم رضا رستمی توسط مجاهدین خلافت در سوریه کشته شده است. درگیری‌ها در اطراف شهر مینبیج واقع در ولایت حلب جریان دارد. نیروهای دموکرات با همکاری کردهای ملحد بارها تلاش کردند تا به این شهر وارد شوند، اما نه تنها به این شهر وارد شدند، بلکه ضربات سنگینی را در جریان نبردها متقبل شدند. تازه ترین که یک تن از فرماندگان شناخته شده ی نیروهای دیموکرات بنامی ابولیلا در خومه میبیش توسط شیرمردان دولت اسلامی به حلاکت رسید است. یک خبر دیگر از این شهر می که در اثر یک حمله استشادی در منطقه ریف الهسان دستکم 13 جنگجوی کرد کشته شدند. نیروهای دولت اسلامی بر یک کاروان نیروهای نظامی سوریه در ماهیت اطراف میدان هوایی دیروزور حمله کردند خبرهای ابتدای می‌رساند که تا در این حملت دهاتن از نیروهای سوری کشته شدند اطراف میدان هوایی دیر زور از دو هفته بدینسو شاید درگیری های شدید می باشد در این مدت نیروهای دولت اسلامی بربیشترین نقاط اطراف میدان هوایی تسلط یافتند یا خبر دیگر می‌گوید که جنگنده های سوری بطار اشتباه یک قرارگاه نسیری ها را آماش قرار داد که ده کشته و زخمی به خبرها از ولایت حمس می‌رساند که مجاهدین دولت اسلامی بر چندین نقطه در شرق بخشی جبجراح در حومه شرقی حمس تسلط یافتند در یک حمله مجاهدین دولت اسلامی در سومالیا تعدادی از افراد پلیس این کشور در مقادشو جراحت سنگین برداشتند در جستجوی حق, حق. بیایید که در جستجوی حق شویم و با کسانی راه را بپیماییم که خود و دیگران را به طرفی جنت فرا می‌خوانند شخصا قبلا بسیار احساس ذلت می‌کردم الحمدلله بازما امیرادیو و خلافت اسلامی که فعال شد از طریق اینترنت باز تلاش کردم این را پیدا کردم خیلی حقایق برام معلوم شد بعد از اینم اقدام کردم که از تحت نظام کفری به تحت نظام اسلام بیام اینها ها کسانه هستند که با کاروان خلافت اسلامی راه پیموده اند خواسته الله بود که ما پشک کردیم گشتیم با استازه هاش با جای مختلف هاش و دیدیم شنیدیم و از همه شنیدیم و بالاخره تانستیم به با توفیق الله تعالی ما به قطر رسیدیم این همه را در برنامه در جستجوی حق فراموش نکنید جمع ها از رادیو صدای خلافت القوي دربنا درب قوي بالخط القرآن سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله, جند الله. جند الله. جند الله. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. براذر محترم مشك براذر ماخذ معرفي كانين. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد عبدلاستم در خاک خراسان وزیر سایه خلافت اسلامی زندگی حوریت را بسر میبرم خب برادر بزرگترین نوروزای شما در زندگی تن چی بود بزرگترین نوروزای ما در زندگی همین بود که همیشه در نماز دعا می کردیم که یا الله مرا مصداق ایت کون ما صادقین بگردانین که با صدقانی یک جا شویم با برادران حقیقی اجا شایم که خلق ما آزاد باشه و چیزی که می خواهیم ما بتونیم آزادانه گفته بتونیم نه که در جای طاغوتی باشیم و زبانمان بند باشه لباس بے غیرتی پوشیده باشیم و الحمدلله الله تعالی و دعای ما را قبول کرد و الحمدلله پیش صادقان هستیم جزاك الله خير میشه که برادر برادر ما ببین که فرق میان نظام های طاغوتی و خلافت اسلامی چیست؟ فرق بین میانه طاغوت و خلافت خوب یک چیز آشکار هست کلاقی میفهمه و بسیار زیاد فرق داره فرق زمین آسمان هست در زندگی طاغوت هیچ چیز نمی شک آدم هر انجام به خاطر الله جل جلاله هست هر حرکتت زیر نظارت مرتادین هست و زیر کنترل هست ای الحمدلله یک فضای آزاد و فضای اسلامی بین مجاهدین می هر رقم فعالیتی که الله تعالی پیش بنده خود می خواد و ما می تونیم ما به خاطر این جانجان بتیم الحمدلله یعنی کفار زیاتر وقت تبلیغات میکنن میگه که نازل الله خلافت دشمن بشریت است شما چی فکر میکنین آیا خلافت دشمن بشریت است یا به خاطر احیای بشریت می که مبارزه بکنن خلافت خال الحمدلله بسیار مسلمانان مبادی رب بفهمه و ما نه مخالفه و خلافت مشنویم خوب با معنی و مفهومش صحیح نفهمیدیم و اعلی تعالی ما را صحیح که خلافت چی معنی داره ما بلکه امت مسلمان بسیار تشنه خلافت بوده و بعد از بسیار سال الحمدلله تعالی بزرگ نیمت برای بر ما عطا فرموده است و این تبلیغات کفار است که هرچی میگویا بسیار بر نام بدینا را محفی میکنن خواب ما باید هرچیز که هزم میرسانه های تاغوتی بشنویم ایره ما باید عکس تبیر کنیم و بر گپشان اصلا میچ باور نبیاریم در خانه ما تیلویزوناست برادران ما هم شایره ما برای تیلویزون میشینن و تبلیغات تاغوتا میشنوند بسیار باور میکنه سرشان که بسیار پیشم تبلیغات کده بود که اینا دایش هست و فلانی اصلا دایش نام ما سهی نمیشنیم دایش چیره میگه ما خلافت اسلامی استم الحمدللہ و ای ای جای محدود نیسته که یا برای اراق براشان باشه یا برای سه های خوراسان باشه بالخمدللہ ما نیت مائیست که سر دنیا سرکل دنیا ما انشاللہ مغلب شبه مالتالا ما غلب کنه و های خلافت و ان شاء الله اونجا نصب و, و قانون الهی تعالی در هر جای زمین نافذ شوا ان پیام شما برای می که فعلا زیر نظامی طاغوتی زندگی میکنن اکثران جوانایی هستند که الحمدلله آشنایی با قرآن و حدیثم دارن ولی میگن که ما اج دعوت میکنیم آیا دعوت از اینا دو چه فایده داره یا نداره بر اینا گفتنی دارم که ك... حال هر چیز اشکار شده دعوت دیگر ماثر نیست اونجا بلکه برعکس بازارر انسان تمام میشه چرا که حق اشکار شده اگر کسی میخواه میتونه به صادقان یک جا شوه بیایان و کسی که بر برونا دعوت دیگر هیچ ضرورت نداره بسیار دعوت شده قرآن هم وجود است الحمدلله حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم موجود است وایه خلافت حق است دیگه شک و شوبه نیست خلافت تو نمیباشه که کل مردم یک جای میشه و با مقابل کفار چی میشه، مستاد میشه. این تو از مومنان کم کم کمالات میشه کار دین را گرفته و این یک خلافت حق است بر برادران خود یک جا شود دیگه دعوت تو چیزا به نمی نمیخوره به zarar شما تمام میشوند دیگه اسلام برای شما شریعت متأخره برای شما اجازه نمیده که شما در قانون طاغوت زندگی کنید و بیاین هجرت کنین زندگی آزاد و به حریت اینجاتر کنین جامای ذلت بکشین از بدن خودتان قبل ازی که خلافت قائم شود در ولایت خراسان یا در شام عراق شما هم در اون نظام هایی که زندگی میکردین اونجا دعوت میدادین بر مردم یا خیر بله کم کم دعوت میدادیم خو ما پیشم مرز کردم که بسیار جا دعوت به انسان تمام میشه خو چیزی که میتوانستیم دوستا را می که سرینا گپ تشیر میکنه برش دعوت میدادیم و متاسفانه معاشر ما با معشر غرب بسیار فرق داره ماشر غرب های غرب که هستن کسانی که ایمان آوردن و اونجا بزرگ شدن قبلا مسلمان هستن و پرورششان اونجا شدن بزرگ شدن اونا یک فکر بسیار مثبت داره در بار اسلام و کوشش میکنه که دین یاد بگیره قران و حدیث یاد بگیره و اونا الحمدلله جوان طبقه کلگی میفهمن که خلافت چی است چرا است در کجا است هدف ما چی است آدرس خود را شناختن آل و متاسفانه جوانان ما در اینجا بگوییم در افغانستان خصوصا در کابل مشغول آرایش خود استن مشغول بدی بندنگ استن دیگه ای چیزا بادر نمیخورم چیزی که اللہ تالا از ما آل خواست میکنه ما باید بورو متوجی شاو ما قوت بدنی الحمدلله تعالی بر ما داده خو یک چیز عملی به اعتبار کوفر منشان بتیم و یا خواستان برای مردم عامچی است تو ما خاص ما برای عوام مردم این نیست که شما با خلافت یک جا شوین مالک وکونین دعوت کنین اگر چیز میتونین ماسر باشد و اول پیام مخواین نیست که اجرات کنین دیگه بر شما شریعت اجازه تا که در نظر نظام ت زندگی کنین و اگر دیگه هیچ چیز نمیتونین که کم از کم برای مجاهدین پشت مجاهدین یا غلط تبلیغ و بعد خو کم از کم نگویین که ال طال میشه که سرینام شما را ببخش که شما بعدات نگفتین برای مجاهدین و مسلمانان.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 طاغوت جالت دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت. بسوي بسوي نور نور. رسول يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا. لیخرى جللینا آمن وعملوا الصالحات منبولمات رسولی به سوی شما فرستاده که آیات روشنی الله را بر شما تلاوت می کند. تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادهاند از تاریکی ها به سوی نور خارج سازد یا دولت الاسلام بوافر اقمت این برنامه را شنبه ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید شنونده های رادیو صدای خلافت این بود داشته های برنامه امروزی ما.